مصنوی معنوی مولوی برنامه هفتادم. حکایت امیر و غلامش که نمازباره بود و انس عظیم داشت در نماز و مناجات با حق میر شد محتاج گرمابه با سهر بانگ زد سنقر حلا بردار سر تا سو و, و گل از التون بگیر تا بگر ما بر رویم اینا گذیر سنقراندم تا سو مندیلی نکو برگرفت و رفت با او دو به دو مسجد بر ره بودو بانگ سلا آمدن در گوش سنقر در ملا بود سنقر سخت مؤلع در نماز گفت ای میره من ای بنده نواز تو بر این دکان زمان صبر کن تا گذارم فرز و خانم لمیه کن. چون امام و قوم بیرون آمدند از نماز و وردها فارغ شدند سنقر آنجا ماند تا نزدیک چاشت میر سنقر را زمان چشم داشت گفت ای سنقر چرا نایی برون گفت می نگذاردم این زوفنون صبر کن نک آمدم ای روشنی نیستم غافل که در گوش منی هفت نوبت صبر کرد و بانگ کرد تا که آجز گشت از تیباش مرد پاسخش این بود می نگذاردم تا برون آیم هنوز ای محترم گفت آخر مسجد اندر کس نماند کیت وا می دارد آنجا کت نشاند گفت آن که بسته استت از برون بسته است او هم مرا در اندرون آنکه که نگذارد تو را کای درون می به مرا کایم برون آن که نگذارد کزین سو پانهی او بدین سو بست پای این رهی ماهیان را بر نگذارد برون خاکیان را بر نگذارد درون اصل ماهی آب و حیوان از گل است حیله و تدبیر اینجا باطل است قفل زفت است و گشاینده خدا دست در تسلیم زن و رضا رزا زره, زره گر شود مفتاحا این گشایش نیست جز از کبریا چون فراموشت شود تدبیر خیش یا بیان بخت جوان از پیر خیش چون فراموش خودی یادت کنند، بندگشتی آنگه آزادت کنند نومید شدن انبیا از قبول و پذیرایی منکران انبیا گفتند با خاطر که چند میدهیم این را و آن را وعظ و پند چند کوبیم آهن سرد زغی در دمیدن در قفص هین تا بکی جنبش خلق از قضا و وعده است تیزی دندان ز سوز معده است نفس اول راند بر نفس دوم ماهی از سر گنده باشد نیز دم لیک هم میدان و خر میران چوتیر چون که بلغ گفت حق شد ناگذیر تو نمیدانی که این دو کیستی جهد کن چندان که بینی چیستی چون نهی بر پشت کشتی بار را بر توکل می کنی آن کار را تو نمیدانی که از هر دو کی غرقه در سفر یا ناجی گر تا ندانم من کیم بر نخواهم تاخت در کشتی و یم من در این ره ناجیم یا غرقم کشف گردان کس کدامین فرقم من نخواهم رفت این ره با گمان بر امید خوش همچون دیگران هیچ بازرگانی ناید تو زن که در غیب است سر این دورو تاجر ترسنده طبع شیشه در طلب نه سود دارد نه زیان بل زیان دارد که محروم است خار نور او یابد که باشد شعله خار چون که بر بوک است جمله کارها کار دین اولا کزین یا بی رها ها نیست دستور بدین جا قرع باب جز امید الله اعلم عالم به سباب. بیان آن که ایمان مقلد خوف است و رجا دائی هر پیشه امید است و بک، گرچه گردنشان کوشش شد چ دوک با دادان چون سوی دکان رود بر امید و بو که روزی می دود بو که روزی نبودد چون می روی خوف هرمان هست تو چونی قوی خوف هرمان ازل در کسب لود چون نکردد ساست اندر جست جود گوی گرچه خوف هرمان هست پیش هستن در کاهلی این خوف بیش هست در کوشش امیدم بیشتر دارمن در کاهلی افزون خطر پس چرا در کار دین ای بدگمان دامنت میگیردین خوف زیان؟ یا ندیدی کهل این بازار ما در چه سودندن بیا و اولیا زیندکان رفتن چه شان رو نمود اندر این بازار چون بستند سود آتشان را رام چون خلخال شد بر آن را رام شد حمال شد آهن آن را رام شد چون موم شد باد آن را بنده و محکوم شد بیان آنکه رسول علیه السلام فرمود ان لله تعالی اولیاع اخفا قوم دیگر سخت پنهان می روند شهره خلقان ظاهر کی شوند این همه و چشم هیچ کس بر نیافتد بر کیاشان یک نفس هم کرامت همیشان در حرم نامشان را نشنوند عبدال هم یا نمیدانی کرمهای خدا کو تو را می‌خواند آنسو که بیا شش جهت عالم همه اکرام اوست هر طرف که بنگری اعلام اوست چون کریم گویدت آتش درا اندرا زود و مگو سوزد مرا حکایت مندیل در تنور انداختن انس رضی الله عنه و ناسوختن از انس فرزند مالک آمده است که به مهمانی او شخصی شده است او حکایت کرد که از بعد تعام دید دستار دستارخان را زرد فام چرکن و آلوده گفت ای خادمه اندرف در تنورش یک دمه در تنور پرز آتش در گند آن زمان دستارخان را هوشمند. جمله مهمانان در آن حیران شدند انتظار دود کندوری بودند بعد یک ساعت براورد از تنور پاک و اسپید و از آن اوساخ دور قوم گفتند ای صحابی عزیز چون نسوزید و منقی گشت نیست گفت زن که مصطفی دست و دهان بس به مالیدن در این دستار خان. ای دل ترسنده از نار و از آب. با چونان دست و لبه کن اقتراب. چون جمادی را چنین تشریف داد. جان عاشق را چه ها خواهد گشاد. مرکلوخ کعبه را چون قبله کرد. خاک که مردان باش ای جان در نبه. بعد از آن گفتند با آن خادمه تو نگویی حال خود با این همه چون فگندی زود آن از گفته وی گیرمو برده است در اسرار پی این این دستار خان قیمتی چون فگندی در آتش عیستی گفت دارم بر کریمان اعتماد نیستم ذکرامشان ناامید ميزر چه بود اگر او گویدم در روان در عین آتش بیندم اندرفتم از کمال اعتماد از عباد الله دارم بس امید سر دراندازم نه این دستار خان. زیتماد هر کریم رازدان ای برادر خود بر این اکسیر زن کم نباید صدق مرد از صدق زن آن دل مردی که از زن کم بود آن دل باشد که کمزش کم بود قصه فریاد رسیدن رسول علیه السلام، کاروان عرب را اندرانوادی گروه از عرب، خوشک شد از قطع بارانش قرب، در میان آن بیابان مانده کاروان مرگ خود برخانده ناگهانی آن مقیس هر دو دوکان مصطفی پیدا شد از ره بحر آن دید آنجا کاروان بس بزرگ بر تف ریگ و ره صعب و سترگ اشترانشان را زبان آویخته خلق اندر ریگ هر سو ریخته رحمش آمد گفت هین زودتر روید چند یار سوی آن گه دوید که سیاه بر شطور مشک آورد سوی میر خود به زودی می برد آن شطربان سیه را با شطر سوی من آرید با فرمان مر سوی کهبان آمدند آن طالبان بعد یک ساعت بی دیدند آن چنان بنده می شد سیه با اشتره راویه پر آب چون هدیه بره پس به دو گفتند می تو را این طرف فخر البشر خیر الورا گفت من نشناسم او کیست او گفت او آن ماه روی قند خو ناعوها تعریف کردندش که هست گفت مانا او مگر آن شاعر است که گروه را زبون کرد او بسر، من نیایم جانب او نیم شبر کشکشانش آوریدند آن طرف، او فقان برداشت در تشنی و تف چون کشیدندش و پیش آن عزیز، گفت نوشید آب و بردارید نیز جمله را زن مشک او سیراب کرد اشتران و هر کسی زان آب خرد راویه پر کرد و مشک از مشک او گردون خیره ماند از رشک او این کسی دیده است که از یک راویه سرد گردد سوز چندان هاویه این کسی دیده است که از یک مشک آب گشت چندین مشک پر بی استراب. مشک خود رو پوش بود و موج فضل میرسید از امر او از بحر اصل آب از جوشش همی گردد هوا ون هوا گردد ز سردی آبها بلکه به اسباب و بیرون زین حکم، آب تکوین از آدم توز طفلی چون سببها دیده ای، در سبب از جهل برچف با سببها از مسبب غافلی، ای. سوی این رو پوشها زن مایلی. چون سببها رفت بر سر میزنی ربنا می رب بنا و رب بناها میکنی رب میگوید برو سوی سبب چون ام یاد کردی ای عجب گفت زین پس من تو را بینم همه ننگرم سوی سبب واندم دما؟ گویدش ردو لعادو کار توست ای تو اندر توبو و می سست لیک من آن ننگرم رحمت کنم رحمتم پر راست بر رحمت تنم ننگرم اهده بدت بدهم هم از کرم ایندم چو می مرا قافله حیران شدن در کار او یا محمد چیست این ای بهر خو کرده ای رو پوش مشک خرد را غرقه کردی هم عرب هم کرد را مشک آن غلام از غیب پر آب کردن به معجزه و آن غلام سیاه را سپیدرو کردن به ازن الله تعالی ای غلام اکنون تو پر بین مشک خود تا نگویی در شکایت نیک و بد آن سیاه حیران شد از برهان او می دمید از لامکان ایمان او. چشمه دید از هوا ریزان شده. مشک او روپوش فیض آن شده. زان نظر روپوش ها هم درید. تا معین چشمه غیبی بدید. چشمها پر آب کرداندم غلام. شد فراموشش ز خاجه. از مقام، دست و پایش ماند از رفتن درا زلزله افگند در جانش الار، باز بهر مصلحت بازش کشید، که بخیشا باز رو ای مستفید، وقت حیرت نیست، حیرت پیش و توست، این زمان در ره درا و چست. دست های بر رونه هاد بوسه آشقانه بس بداد مصطفی دست مبارک بر رخش آن زمان مالید و کرد و فرخش شد سپید آن زنگی و زاده هبش همچو بد رو روز روشن شد شبش یوسفی شد در جمال و در دلال گفتش اکنون رو بده واگوی حال او همی شد بی سر و بی پای مست پای می نشناخت در رفتن زده است پس بی آمد با دو مشک پر روان سوی خاجه از نواهی دیدن خاجه غلام خود را سپید و ناشناختن که اوست. خاجه از دورش بدید و خیره ماند از تحیر اهل آن ده را بخاند. راویه ما اشتر ما هست این پس کجا شد بنده زنگی جبین این یکی بدر است می آید زدور می زند بر نور روز از روش نور کو غلام ما مگر سرگشته شد یا بدو گرگ رسید و کشته شد چون بی آمد پیش گفتش کیستی از یمن زادی و یا ترکیستی گو غلامم را چه کردی راست گو گرب کشتی وانما هیلت مجو گفت اگر کشتم به تو چون آمدم چون به پای خود در این خون آمدم کو غلام من بگفت اینک منم کرد دست فضل یزدان روشنم هی چه میگویی غلام من کجاست هین نخواهی راست از من جز براست گفت اسرار تو را با آن غلام جمله باگویم یکا یک من تمام زن زمانه که خریدی تو مرا تا به با اکنون بازگویم ماجرا تا بدانی که همانم در وجود گرچه از شب دیز من صبح گشود رنگ دیگر شد ولی کن جان پاک فارغ از رنگ است و از ارکان و خاک تنشناسان زود ما را گم کنند آب نوشان ترک مشک و خم کنند جان شناسان از عادتها فارغند غرقه دریای بیچونند و چند جان شو راه جان جان را شناس یار بین شو نفرزند قیاس چون ملک با عقل یک سر بهره حکمت را دو صورت گشتند. آن ملک چون مرغ بال و پر گرفت، وینخرد بگذاشت پر را فر گرفت. لاجرم هر دو مناصر آمدند، هر دو خوشرو پشت هم دیگر شدند، هم ملک، هم عقل، حق را واجده. هر دو آدم را معین و ساجده نفس و شیطان بوده زوال واحده. بوده آدم را عدو و حاسده آنکه آدم را بدن دید، او رمید و نور معتمن دید، و خمید. آن دو دیده روشنان بودند از این ویندو را دیده ندیده غیر تین این بیان اکنون چو بر یخ بماند چون نشاید بر جهود انجیل خاند کی توان باشیه گفتن از عمر؟ که توان بربت زدن در پیش کر لیک گرده بگوشا یک کسه است هایهوی که براوردم بس است مستحق شهر را سنگ و کلوخ ناطق گردت مشره با رسوخ